مباعثمون در سیاهدان درمانی یعنی درمان با حبت سودا باشونیست خداوند متعال در دانه گیاه سیاهدانه نعمتها و برکات فراوانی قرار داده ابن بیطار طبیعت سیاهدانه رو گرم و خشک میدونه و برای طب ربعی درمان کننده بادهای موجود در اندام مختلف، های مختلف، شکمی غیر شکمی، اندامی، عضله‌ای و مانند او. خوش کننده رطوبت معده کسانی که معده سرد دارند یا معده مرطوبی دارند یا لیزی معده دارند یا مدفوع مخاطی دارند، سیاه و در همه مواردی مفیده اگر سیاه دانه با اصل میل شود حتی سنگ ریزا یعنی شن کلیه و سنگ کلیه هم از بین میره خورد میشه دف میشه همچنین جلا دهنده رنگ پوست و چهره هست که گفتیم چند چیزه مثل لیمو شیرین مثل پرتغال شیرین مثل کاهو بدون سوس یکی شمچی مومن سیاه دونه که با عسل بخوری یکی دیگه چیه؟ انار شیرین یکی دیگه چیه؟ اینکه با حوله یا دستمال صورت خوش نکن یکی دیگه که بسیار مهمه چیه؟ نماز شب بخونی بسیار مهمه خیلی فواهد داره یکی شم چهرتون زیبا میشه هم دنیا هم آخره به مقام محمودم میرسی خیلی فواهد داره خدا رحمت کنه آیت الله عرفانیان محوم رو که تو دفتر آیت الله از خویی و دفتر امام خمینی بودن پاسخ به جواب سوالات شرعی می دادن چند تا کتاب داره الاشتهاد و تقلید کتاب در علم رجال یک کتابم داره در بحث سلات و لیل عدد و ها فوائد و ها فضیلت و هشتاد روایت رو آورده خیلی قشنگی اجازه نقل روایت از مرحوم حاجقا بزرگ تهرانی صاحب از ذریعه داشت اجازه نقل روایت حالا خواستم یه یادگاری بگم پس جلا دهنده جلا دهنده رنگ پوست و چهره یه مقداری رو ستون شماردم یکیش هم سیاه با اصله حتی کسانی که اخلات قلیز دارن یا خلط چسبنده دارن حوصلشون سر میره سن لوکو سجود میره یا دلار اس میشه خلتہ میاد تو گلوش نمیتونه حرف بزنه اینجا سیاه دونه با عسل شب قبل از خواب بخوره صبح ها عسل رقیق شده با آب بخور خلتای اضافی چی میشه قطع میشه از جیبت بهتر بود یه آب سیب عسل وسط روز بخوره یا عصرونه اگر خلت اضافی یا خلت چسفنده پیدا کردی ها هر جای کره زمین هستی ها به جایزه می چون خلت اضافی هرگز نمیگیری، مخصوصا خلتای چسبنده که هر چی کنی کنده نمیشه اعصاد بر نمیشه گوی گلوج زخم نشه میسوزه اما خلت کنده نمیشه داروش چی جان عسل رقیق شده صبحگاهی آب سیب عسل روز و, و سیاه‌دونه با عسل در شر و این یک داروی بسیار مهم دیگری هم هست که بعد سه میگن میگم که پزشکی جدید دارو نداره کم ساعت به حواشی ما میگن. اگر مؤمنان حضرت خانومی درد رحم داره تسکین میبخشه درد رحمیش رو حالا درد رحمی نزیره مثلا قاعدگی های دردناک در دختران بالقه یا حضرت خانوما چه ازدواج کرده چه ازدواج نکرده حالا پزشکی جدید در تخصصی بیماری زنان چی میده؟ اُسه درد‌های رحمی یا قاعدگی دردناک فرسه شیمیایی هیوسین یا آمپول ضد درد هیوسین حالا تو بحث طب مکمل و طب اسلامی ما سه تا دارو یک گل گلرنگ دو گل خار اولیش گل گلرنگ دوم گل خارمریم سوم مبارسه خودمه مصرف سیاه دونه بهترین زمان شب قبل خوابه با یه قاشوه اصل بخور خوب به جوه. خودش به بخور قاعدیگی های دردناک خوب میشه دردای رحمی هم خوب میشه کسانی که یرقان دارن باز جزه کبد و مراجعه کنیم اما توضیح دادن دوست صفحه حالا یکی دیگه از داروهایی که یرقان مخصوصا گریدر یکش یعنی هپاتیت نوع آ یعنی یرقان عادی، زردی عادی اینجا مؤمنان با سیاه هم خوب میشه حالا اگر بچه کم سن بوده مثلا اکتر یا زردی نوزادی بود جوشانده سیاه یه سیاه یه قاشق چای بشه و نوزادان یا بیماری اکتر در درمانش مؤثره شدیده نظیر آب پوست کدو مصما که از هشت نوع کدو تو سه سه سنعش اومده یک تن دباو، یک تن قرع حالا آب پوسته کدو مصما یه قاشق خوری. این هم در درمان زردی نوزادان مفید دیگه نیاز نداری که ایبری اشای ماوراء بنفش تشدید کنندا چیه این فقط هر کدوم یک بار فقط یک بار فقط فهمیدید اگه دو تاش مخربتی امروز مثلا یک قاشق چای خوری جوشونده سیادو نمی‌دین فردا همین ساعتم یک قاشق چای خوری آب پوسته کدو مسما میدین به قول عربا خلاص یعنی نوزاد رو برامش یعنی مادر بچه رو باید تا یک هفته دو هفته سه هفته آب سیب اگر زردی نوزاردی عادی بود یا متوسط بود یا شدید حالا مادر بچه یه هفته یا دو هفته یا سه هفته باید آب سیب بخوره روزی یک لیوان روزی دو لیوان روزی سه لیوان و طبق زردی نوزادی که توضیح دادن حالا تو مباعثه ما ها تو بحث استنشاق اگر کسی پودر سیاه دونه رو تو بینی بکشه استنشاق با پودر تازه سیاهدانه در درمان زردی عادی نوع یک بسیار مهم استنشاق با پودر تازه سیاهدانه تنگی نفس به شرطی که مونده نباشه چون سیاهدونه اگر مونده باشه در مجاورت هوا باکتریایی قارچی میشه و در اثر نورای شدید پروجیکتور و مانند او یا نور شدید خورشید در گاز خردل تولید میکنه خودش برونشید به نوع احاد یا مزمن میاره پس این فرمایش یا گفتار ابن بیتار که یکی از بزرگان علم طب میگه که تنگی نفس سودمنده حاشیه بزنیم به حرفش به شرط اینکه پودرش تازه باشه اما اگر پودرش مونده باشه یا در مجاورت نور شدید باشه بدتره که هم گوز بالا گوز میشه یعنی طرف آسم، ویق نفس یا تنگی نفس داره حالا سیادونه مونده که بخوره یا استنشاق کنه دوچار برانشیت حاد یا مزمن هم میشه شدت بیماری یادتون باشون تخصصیه ریه و تخصصیه داروشناسی گیایی گفتم و اینه به حرف ابن بیطار حاشیه بزنید و به فرمایش دکتر محترم دکتر محمد دریایی اگر روغن سیاه رو به صورت زمات یا پومات قسمت هایی که سردرد های میگرنی داره ماساژ بدن سردرد میگرنی التیام پیدا کن اما به عنوان یک مسکن چیه؟ گیاهیه ابا علی سینا در کتاب قانون طب طبیعت سیاه دونه رو گرم میدونه و روغن سیاه دانه زگیل ها خال ها رو زدوده وقتی روی زگیل یا خار بذارین مثل جوهر نمک مثل شیرابه انجیر مثل سرکه سیب یکی دیگه شیه بحث روغن سیاهدانه سیاهدانه رو مثلا تو روغن بادام تف در پایی روغن زیتون باشه بهتره حالا روی خود زیگل بذار یا روی خود خاله گوشتی بذار و در علاج لکه های سفید و پیسی چه به نوع لکه های بحقی چه به نوع لکه های برسین لکه های سطحی سفید پوست میگیم بهق، لکه های سفید پوستی که به ام هر چار لایه پوست رو درگیر کرده، دسیده تا ازاله این هم برای درمان به سبک پماد و زماد مؤثره اما علاج واقعیش چیه مومن علاج واقعیش قبلا گفتن در زیگیل ها و دومل ها علاج واقعی یک صبح ناشتا یک لیوان آب انار شیرین رو با هفته گلنار وحشی بخوری. یادتونه از دکتر مهندس شهرام مقصودی از کتاب انار درمانی اینجا آوردم رو خوندم دیگه شخص تا یک سال دوچار کرک دومل های درشت و همچنین دوچار زیگیل نمیشه به مدت یک سال چون قوی ترین تصفیه کننده خونه پس یک صبح ناشتا یک لیوان آب انار شیرین با هفت عدد گلنار وحشین حالا یکی دیگهش هم مباحثه چیه؟ جوشانده سیاه دونه رو با اصل بخوریم یا روغن سیاه دونه رو چیکار کنیم؟ رو خود زگیل یا دامل یا کورک بگذنیم اگر کسی سنگ کلیه، سنگ مسانه یا شن داره رمل اینجا باید یک رفتار مثبت داشته باشه و یه عمل کرده مصبت. رفتار مثبت چیه؟ اگر ازدواج قانونی یا شرعی کرده بعد از سلام علیک خصوصیش سود پانش وایسه و رابره. بره یورسا رمل تو روایات شیه میگه شن کلیه میاره. پس باید از دست چپ یه مقدار به دست راست استراحت کنه مختصری مکس کنه بعد بره تجده وضوع دستشویی بره بعد وضو مستحبه قبل از قسل جنابت بعد حالا قسل جنابت کنه زود از جاش بلند شه بره یور سرلمل شله میاره یک رفتار مثبت دیگه هم که مؤمنه هست اینه که سیاه دونه رو با اصل به جایه بخوره سنگ ریزه های شن و کلیت چی میشه؟ همونج خورد میشه و سپس دفت میشه دیگه نیازی به سنگ شکنی مغناطیسی و یا لیزری نداره مطالب دیگه هم هست حالا دیگه مطالب تو کتاب های تب سنتی تب مکمل باز مطالبی گفتم مثلا اخلات رو اعتدال می‌بخشه یعنی کسی که خلط سوداویش یا صفراویش یا دمویش و یا بلغمیش از حالت تعادل بیرون رفته طبایع اربعه که طبایع اصلیه پنج تا امروش بزار میشه نه تا فری پنج تا فری چهار تا است حالا کسی که تبایش از اعتدال بیرون رفته مزاجش به هم ریخته اینجا یکی از داروهای طبیعی مفید که اعتدال به مزاج میبخشه چیه؟ سیاه دونه با اصده دیگه حالا توضیحات دیگه خودتون نگاه کن اخلات قلیز رو رقیق میکن قاعد آوره ترشوه شیر مادر برای فرزندش رو میده ما دیروز رتب رو از قرآن مجید و روایات اهل بیت اسمت و طهارد در کتاب و نکاح وسایلشی جلد چارده تذکر دادیم که اولین قضای مادری که بچش به دنیا آمده چی باشه؟ روترد باشه که خورمایه تازه است اگر کسی سموم سرد داره سیاهدانه اصلا پادزهری قوی داره یک ضد سمه یک تریاق تریاق یعنی زده سم یعنی پادزه حالا تریاغ اکبر مثل نمک تعام پودر نمک سنگ یا تریاغ پادزهرای دیگه یکی شمچه همه جا سیاه دانه چرا اثر ضد سم داره؟ چون ماده ملانتین ملانتین در سیاه دانه موجوده که سم موجوده در بدن رو خونسانگ اگر کسی بخواد این مواردی که قبل ذکر کردم درمان بشه میتونه این پودر سیاه دانه رو با روغن سوسن قاطی کنه و به صورت شیاف برداره. علامه مجلسی الله مقامه تو کتاب بهار مطالب از درباره سوسن و مانند او داره در درمان انواع سردردها صداع رأس که بعد اونجا حواشی به اون کتاب زدن مطمئنم انشالله وقت وقتش اونا روستون میخونم کسانی که سرفه صد دارند درد سینه دارند ناراحتی تنفسی دارند فونتون قی میکنن استفراغ دارند یا آشفتگی روانی و ذهنی دارند یا استسقا تشنگی کاذب دارند یا یرقان به نوع یک مخصوصاً دارند حتی در درمان یرقان به نوع بی هم. که یرقان پیش رفته هم سیادونه نقش داره کسایی که نراحتی های تحال دارن مثلا ورم تحال یا نراحتی های کبد دارن مثلا ورم کبد یا قولنج های نفخی دارن قولنج های نفخی که به اسطلاح خودمون تو پزشکی جدید میگیم کلیت کلیت داره یعنی التحاب روده داره در همه این موارد خوردن سیاهدان با اثر یا بی اصل خودش به جای قورت بده یا محل درد رو که درد شخص به خاطر ورمه مثلا ورمه کبد ورمه تحال زیر دنده راست زیر دنده چپ کبد زیر دنده راست بالای دیافرک تحال زیر دنده چپ پایین دیافرک محل درد رو از رو میتونی با روغن سیاه ماساژ ماساج بیده. دردت تحال و کبدت خوب میشه بخوری مومنا اگر در پای روغن زیتون باشه ورم از داخل خوب میشه مثل اینکه که سیادونه رو با اصل به جایی بخوره رسول مومنا بخصه نفریت ورم های داخلی چی میشه همون خوب میشه اگر کسی دندان درد دارد اینجا چند مطلب قبلنا گفتیم مثل چی همون جون مثل گل میخک دارویی. یکی دیگه چیه؟ مثل محلول آب سرکه تو دهن بگردونی بیزی بیرم دندون درد ساکت میشه خون روش لسته بند میاد. افتادیگه لسته بند میاد، تورم لوزاد از بین میره خلط چسبنده آخر حلق، و کیپ ببینید خوب میشه یکی دیگه حالا تو کتاب اگر دم کرده سیاه دانه را با سرکه مزمزه کند برای درد مفیده در دانه های سیاه دانه روغنی همراه با مواد معطر مثل آروماتیک آروماتیک و همچنین فرار همچنین ویتامین ای و همچنین هرمون های جنسی داره پس اگر خانمی یا مردی دچار خستگی جنسی بیماری خستگی جنسی و ازدواج قانونی شرعی کرده و هورمون‌های های مردانه تستستران یا استروژن و پروجسترانش کمه میتونه از سیاه دانه با اصل استفاده کنه شب قبل از خواب یه قاش و مرب بخوری بخوره برای قوت کمرش هم خوره صبح ها میتونه حلیم گندمگوش اکل الحریسه که تو رو آیاتشیه داریم حلیم گندم گوشت بخوره قابل عرض همه مسلمانان جهان باید دین و مذهبی اگر مسلمان ها ارزه دارن ازدواج قانونی و شرعی کنن لاعقل از این حلیم دنیایی صبحا تو صبحانشون بخورن که تو جاده خاکی نری بربارینگ خورد نکنی می جوشی نباشی یا تاقان نزنی این این همه فواد که سیادونه داره اما زیاده روی در مصرف سیاه دانه برای کلیه ها ضرر داره حال اگر کسی مزاجش گرم و خشک برای که سیاه دانه او را براش نداشته باشه باید سیاهدانه دانه رو با کتیراي خوراکی بخوره اسراف در خوردن سیاه دانه در گرم مزاجان موجب ورم و دردهای گلو و گرفتگی هایی می شود. از این رو گرمزاجان باید سیاه را در سرکه بخیسانند و سپس بخورند. زیرا سیاه دانه به تنهایی زیاد بخوریا برای کلیه زرقر. از این رو شخصی که گرمزاجه این سیاه دانه رو با کتیرای خوراکی ها. نه هر کتیرایی چون بعضی کتیرا شوینده است. مثلا این کسی که پسوریازیس یازیس یا داعصادف داره بعد با کتیرا خواهش بشیره بعد با محلول کولتار شستشو و ماساج بده تا پسور یازیس خفیفش داعصادف خفیفش خوب بشه اونا هم دیگه تو تب رسول مصطفى توضیح دادن چهار مدل مودله داعصادف خفیف و شدید و پسچولر و معکوس اونا رو اونجا توضیح دادن خب اگر کسی سرگیجه دارد و دردهای گوش دارد یک قطره روغن سیاهدانه رو در گوش بچکانه و اطراف گوشهاش رو با روغن سیاهدانه چرب کن سپس یک قاشق مربخوری رو از اصل با چند قطره روغن سیاهدانه بخوره این کار رو هر روز صبح ناشتا انجام بده حد اقل به مدت یازده روز سیاه با اثر یا سه قطره روغن سیاه با اثر بخوره کتاب معجزات درمانی سیاه و اثر دکتر محمد دریایی صفحه 23 صفحه 23 حتی ذکر درمانی تو با گیاه درمانی مثلا بعد از نماز وتر یک رکعتی نماز شب و قرارت سوره فاتحه فاتحه الكتاب کتاب سه مرتبه آیت الکرسی سه مرتبه آمن الرسول سه مرتبه معوزتین دو سوره پایانی قرآن سه مرتبه سوره اخلاص سوره توحید سه مرتبه پس از اینها یک فنجان شیر گرم و پنج قطره روغن سیادانه مخلوط کرده بنوشند نوشن تو تو بحثایی زک درمانی توأم با گیاه درمانی حالا تی این مسائل میتونید به نسخه های شفاهی و کتبی حجت الاسلام محقق موسوی مراجعه کنید تو کتاب مجربات الامامیه حالا این بنده خدا دکترم از کجای عالم آورده حالا خوب کاری کردیم ولی آدرسش ننوشته حالا بقیهش بمونه ولی اصل کتاب روستان گفته یا تبول اهمه علامه شبه یا مثلا تو زکدرمانی های خاص اونجا مؤمنان علامه مجلسی تو بهار محشر کرده حالا اونو وقتی که اینا خاموش شد ولی یک کلمه خدمتون میگم چقدر مطالب ارزنده ای است و برای خواصش تو درمان ریزش مو تو درمان روماتیسم که یه روز اومدم اینجا قشنگ توضیح دادم تو درمان بیماری تو درمان اسهال تو درمان ضعف قلب تا ها و التهاب های کبدین تقویت گردش خون در صدا خاص مثل میگرن یا بیماری اصر ما تو درمان جوش های غرور جوانی که باز مطالبی اینجا هست درمان شکستگی ها مثلا مطالبی هست خب سیادونه با عسل بخوره خورمان بعد قضا بخوره و دیگر دیگه که این بنده خدا میفرماید به یک, دیگر یک چیز دیگه هم چیه مومیا مومیایی عقل جبال اگر کسی استخوناش مویه کرد یا شکست مریض متخصص یا شکست بند ماهر مثلا استخون آبگلاج بشه همراستا بشه بعد می تا جوش بخوره برای اینکه دیر جوش نخوره چیزای ترش و تندوتیز تیز نخور اگر ترشیجات بخوری و یا اینکه چیزای تندو تیز بخوری جوش خوردن استخونت به تأخیر میاخته اما خورما با مغز بادوم شیرین هر روز هفته هفته دوتا دوتا با هم بجو. وقتی که از تو باند و گچ در آمد حالا اندازه یک ماش مومیا قورت بده عربا میگن علق الجبال فردام همین ساعت که مثلا ساعت نه همین ساعت باز اندازه یک ماش بخور این تموم شه ولی هر روز محل شکستگی مومیا هر روز محل شکستگی رو با محلول مومیا ماساژ ملایم بده ماساژ ملایم بده چرا که واستخون جوش میخوره پسشکی جدید دارو برای جوش دادن ترک استخون نده گرفتین احمد جان چی میگن؟ پس مومیا مومیای اصل رنگ سیاه برلاقه رنگ برلاغ متالیکی از فشار سخراهای کوه به یک دیگر یه مایع شیمیایی سیاه رنگه قیمت اصلش از اون تره کوه های ایران هم این طرف این طرف داره بزرگوارای محققین در علوم زیستی و گیاهی باید برن جمع کنن و در دسترس مردم قرار بدن مخصوصاً متخصصین مفاصل روماتولوژی، متخصصین ارتوپدی متخصصین مؤمنان اندام بحث ماساج درمانی و حرکت درمانی و همچنین فوق تخصصی مفاصل در هر چهار زمین همه این بزرگوارا محتاج این هستن که برای مریضشون تجویز کن گرفتین همون چی گفتن؟ آه. کوهای گناباد، قاینات برو تا روستای اردکول از این برم منطقه فارس استهبانات دارار اینا همه ممنون کوهاش پاره یکی را میره بیتوار یکی میره یه سنگ میزن که لگد لگت میزن آدم وقتی جاهل باشه قربون امیر المؤمنین علی علیه السلام برم که می اگر مردم ارزش علم رو میدونستن، بر طبق علم و یقین عمل میکردند، فرای برای کسب هر کلمه علم نافع حاضر بودند. خون همدیگه رو با شمشیر بریزن آدم وقتی که تو جهل مرکب باشم گنجینه و خزائنی که خدا بهش داده همه رو نفله میکنه و ضایع میکنه خواهش هم نمیدونه بعد میگه چرا قرب پیش پیشرفت میکنم بعد اینکه دانشمندانتون رو میدوزن فارتگری هم می بعد فراوری از اون قارتگری میکنن. اما افرادی که حواسشون به دانشمنداشون نیست حسن استفاده از نعمات موجودم هم هی لحویات و لغویات. قربشه خودش تو گل مونده به خاطر لقویات لحویات حالا مسلمون کپیرایت کرکرانه کنه این که مدرنیته نیست این حماقت فعلیه پس مسلمون های عاقل فرمایشات امیر المومنین علی علیه السلام رو به جان دل میخورن عمل میکن امیر المومنین فرموده علم نافع کن و عمل بر طبق علم و یقین کن خالصا لوجه هل کریم این هم مومنان. حالا یه چند تا حاشی بگیم. یکی از بیماری هایی که مطرحه بیماری اس ام آی یعنی تحلیل, تحلیل سلول های عصبی. علائم بیماری مریض به سختی از جا بلند می از بالا رفتن پله ها مشکل دارد دستهایش قدرت ندارد گرچه راه رفتن او خوب است در صورت عصبانی شدن بیماری اس ام آش تشدید می شود یعنی تحلیل سلول های عصبیش بیشتر می شود درمان صبحانه شیرعصر یه روز دیگه شیر یه روز دیگه حلیم گندم گوشت در شبان روز روزی دو مرتبه یعنی هر دوازده ساعت یه قاشق پلوخوری از مخلوط سه شیره شیر خرما، شیر انگور شیر توت درمان ضعف عمومی بدن بیماری که اسم داره یک انگور دو انجیر سه موز رسیده چهار سی درختی شیرین پنج گلابی شیش انار شیرین هفت عدس هشت برگ چقندر نه اسفناج با پیاز بخوره بدون ماست یکی از اشتباهات داخل خارج کشورد چیه؟ رو با ماست میخورن مصمومیت میاره بدون ماست اسفناج رو با پیاز بخوره ده جو یا ماوشعیر اسلامی یازده میوه بلوت دوازده گندوم بوداده سیزده توتفرنگی چهارده پیاز رو با آبگوشتش بخوره پونزده روزی دو لیوان آب زردک بخوره شانزده اصل رقیق شده صبحگاهی بخوره چیزهای ترش و تندوتیز برای بیمار اس ام ای سمه و همچنین سعی کنه این مواردی که میگم نخوره زیرا که ازولات بیمار رو شلتر میکنه مثل نارنگی مثل شکولات مثل کاکائو مثل قهوه مثل نسکافه اگر کسی ازولاتش شله و رمقش کمه یا بیماری اسم اینجا میتونه هر شب در میون کته برنج رو کته برنج رو با پنیر و پرتقال بخوره کته برنج رو با پنیر و پرتقال یک شب در میون شبا بخوره اللهم صل علی محمد